عزیزان، امروزه یکی از هیته های بحث برانگیز در کلیسای ما هیته عطایای روحانیه. دشمن دوست داره از هر چیزی که میتونه استفاده کنه تا در ما نفاق و گیجی ایجاد کنه. اما کلام خدا کماکان شفاف و روشنه که ما یک بدن هستیم. به دقت، به تعلیم الهام گرفته پولس رسول در مورد ماهیت مصد شدن توسط روح خدا گوش بدید. و اما در خصوص تجلیات روح ای برادران، نمی خواهم قافل باشید. میدانید که وقتی بط بود پرست بودید، به هر نحوی اقوا شده، به سوی بط های گنگ کشیده می شدید. پس به شما می گویم که هر که به الهام روح خدا سخنگوید، ایسا را لن نمی کند. و هیچکس جز به واسطه ی روح القدس نمیتواند بگوید ایسا خداوند است. باری عطاها گوناگونند اما روح همان است خدمت ها گوناگونند اما خداوند همان است عمل ها گوناگونند اما همان خداست که همه را در همه به عمل می آورد ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می شود به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده می شود به دیگری به واسطه همان روح کلام معرفت و به شخص دیگر به وسیله همان روح ایمان و به دیگری باز توسط همان روح عطایای شفا دادن به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود به دیگری نبوت و به دیگری تشخیص ارواح و باز به شخصی دیگر سخنگفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می شود و به دیگری ترجمه زبانهای غیر اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس میبخشد به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید ما به مطالعه اول قرنتیان ادامه میدیم ما دیدیم که این کتاب به دو بخش تقسیم شده یعنی از باب اول تا باب 11 و باب دوازدهم تا باب شانزدهم. قسمت اول این کتاب تعدیبیه یعنی اصلاحگر بود و قسمت دوم این کتاب بناکننده نامیده میشه پولس در قسمت اول یعنی یازده باب اول به راهنمایی در خصوص مشکلات کلیسای قرنتیان می‌پردازه که پولس رو مجبور میکنه تا قرنتیان رو به دلیل رفتار دنیاییشون توبیخ کنه. با این حال پولس این گونه این بخش از نامش رو شروع میکنه. و اما در خصوص تجلیات روحی برادران نمیخواهم قافل شوید. شما در مورد طبق بندی روحانی قرنتیان نمیتونید کاری بکنید ولی حتما تعجب خواهید کرد در آیه ابتدایی این نامه پولس به طور مقدسی اونها رو راهنمایی میکنه ولی همونطور که جلوتر میره شما متوجه میشید اونها هر چیزی بودند جز آنچه ما انتظار داریم باشه این به ما کمک میکنه تا به واژه تقدیس شده تمرکز کنیم تقدیس شده یعنی بخشی جدا شده برای پیروی از عیسی اینکه شما تقدیس شده باشید به این معنا نیست که بی گناه و کاملی قرنتیان قطعا شاهدی از این حقیقت بودند همچنین پولس به عنوان افرادی روحانی به قرنتیان راهنمایی میداد پولس به قرنتیان نمیگه که شما نفسانی و غیر روحانی هستید بلکه به اونها مردمان روحانی میگه با این حال پولس از اونها میپرسه من شما را بر اساس رفتارتون چی صدا کنم در باب سوم پولس از واژه نفسانی استفاده می کنه او میگه من به شما شیر دادم نگوشت زیرا آمادگی آن را نداشتید و هنوز هم ندارید چرا که هنوز نفسانی هستید وقتی در میان شما حسد و جدال هست آیا نشانه آن نیست که نفسانی هستید آیا مانند انسان معمولی رفتار نمی کنید خوب شما حتما از طبقه بندی روانی ها تعجب خواهید کرد وقتی به باب دوازدهم برسید این رو درک خواهید کرد قرنتیان قافل بودند پولس می نویسه و اما در خصوص تجلیات روحی برادران نمیخواهم قافل باشید اونها افراد تحصیل کرده ای بودن پس قافل نبودن اونها در مورد حقیقت روح القدس قافل نبودن اونها آدمهای روحانی بودن تقدیس شده بودند عطایای روحانی داشتند اونها حقیقت روح القدس رو درد کرده بودن اما در خصوص ماهیت روح القدس قافل و بی اطلاع بودن این چیزی که پولس در باب 12 از اول قرنتیان اون رو مورد بحث قرار میده. او ماهیت روح القدس رو مورد بحث قرار میده. پولس به قرنتیان در مورد ماهیت روح القدس میگه این راهیه که روح القدس از طریق اون کار میکنه. روح القدس پیش از عطایای روحانی در افراد روحانی قرار میگیره. عطایای روحانی به این افراد ظرفیتی رو میده تا خدمت روحانی خودشون رو شروع کنند. به عنوان کسانی که این عطایا رو برای انجام خدمت روحانی می‌گیرند روح القدس عطایای اونها رو مس میکنه و عطایای اونها رو در خدمت اونها تجلی میده پولس در ابتدای باب دوازدهم اینطور صحبت میکنه. انواع گوناگونی از عطایا وجود داره روح القدس یک سری عطیه روحانی رو به همه افراد کلیسا نمیده به این معنی که خدمت‌های متفاوتی وجود دارند طبق اون عطایای گوناگونی هم وجود داره پولس در اینجا عنوان میکنه که عملها گوناگونند این عملها یعنی چیزی شبیه انرژی ها شدگی ها یا تدهین ها به این مانی که روح به افراد روحانی عطایا میده عطایایی که اونها میگیرند باعث میشه تا ظرفیت داشتن خدمتهای روحانی داشته باشند و به با عنوان کسی که این عطایا رو در راه خدمتشون دریافت میکنند روح القدس خدمت اونها رو مس میکنه. افراد روحانی یک عطیه و یک خدمت مشابه ندارند روح القدس به اونها فقط یک نوع مس برای خدمت‌هاشون نمیده. راه دیگه تفسیر این اینه باری عطایا گوناگونند اما روح همان است خدمت ها گوناگونند اما خداوند همان است ها گوناگونند اما همان خداست که همه را در همه به عمل آورد. ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می شود. به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده می شود. به دیگری به واسطه همان روح کلام معرفت. به شخصی دیگر به وسیله همان روح ایمان و به دیگری باز توسط همان روح اطایای شفا دادن. به شخص دیگری تشخیص ارواح و باز به شخصی دیگر سخنگفتن به زبان های غیر بخشیده می شود و به دیگری ترجمه زبان های غیر. اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس میبخشد در این قسمت اول قرنتیان باب دوازده پولس رسول میخواد به ما بگه که نه تنها چیزهایی که در مورد عملکرد روح القدس گفتیم بلکه وقتی داره چیزهایی در مورد عملکرد روح القدس به ما میگه او در مورد ماهیت روح القدس دو اصل رو به ما تاکید میکنه که اصول متضادی هستند او اصول گوناگونی رو به ما معرفی میکنه. مشاهده کنید که پولس چطور این رو میگه. او کلمه گوناگون رو بارها تکرار میکنه. به این معنی که اگر شما کلیسای پر از روحی دارید، جایی که مردم توسط روح القدس رهبری میشن و توسط روح القدس پر شدن و توسط روح القدس عطایا گرفتن، شما باید به این افرادی که گوناگونند و با هم فرق دارند احترام بذارید. اما متاسفانه چیزی که ما امروزه می‌بینیم کاملاً برعکس اینه. بعضی از کلیساها هستند که افراد پر از روحی دارند و به بقیه میگن اگه شما می‌خواهید روحانی باشید، باید دقیقاً مثل ما باشید. شما باید ثمراتی مثل ما داشته باشید و مثل ما خدمت کنید. این ثابت میکنه که شما روحانی هستید. وقتی که ما دقیقاً مثل هم باشیم، ثابت میکنه که روحانی هستیم. ما مثل یک سوسیس و یا یک شکلات کوچک نیستیم که وقتی از کارخونه بیرون میاد همه دقیقا مثل هم باشه. این راهی نیست که روح القدس از طریق اون کار میکنه وقتی روح به ایمانداران خودش عطایای روحانی میده عطایای گوناگونی میده به این معنی که هر کس خدمت متفاوتی داره و خدمت ها گوناگون هستن روح القدس به طرق مختلفی خدمت ها رو واس میکنه و قوت میبخشه پس در یک کلیسای پر از روح گوناگونی وجود داره نه هم شکلی. در این حال پولس به این اصل هم تاکید میکنه یگانگی اگر در شما یک دید وجود داشته باشه اون وقت یک یگانگی فوقالعاده وجود داره حالا چطور میتونید این دو اصل متضاد رو با هم به کار ببندید؟ پولس دو موقعیت مختلف رو توسط یک تصویر الهام گرفته میاره پولس میگه کلیسا شبیه بدن انسانه بدن انسان توسط اندام‌های گوناگون مختلفی ساخته شده. بین یک دست، یک گوش و یک چشم، بینی و پا تفاوت‌هایی وجود داره. تمام اعضای مختلف بدن خصوصیات خودشون را دارند. با این حال به دلیل اینکه تمام اعضای گوناگون بدن تحت فرمان یک سر هستند، ماهیت این اعضای متفاوت یگانگی یا هماهنگی رو به همراه داره که زیبا است. اونها به طریق زیبا با هم همگام هستند. پولس میگه این روشیه که کلیسا هم باید مثل اون باشه. این طریق ماهیت روح القدس و این راهیه که باید ماهیت کلیسا طبق اون باشه. ماهیت کلیسا با گوناگونی و یگانگی همراهه. اگر یادتون باشه اعمال رسولان باب دو آیه 42 در مورد کسانی صحبت میکنه که در روز پنتیکاست ایماندار شدن و خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردن من گفتم که این آیه به ما انگشتان آشکار کلیسای مخفی اون زمان رو نشون میده به ما کمک میکنه که تا به دست فکر کنیم اثر انگشت شست تبلیغ مسیحه چون باعث شد که سه هزار نفر در روز پنتیکاست وقتی که کلیسا متولد شده بود ایمان بیارن انگشت اشاره تعلیمه، انگشت میانی رفاقت یا در زبان یونانی است، انگشت حلقه پرستش یا عشق به خداوندمان و انگشت کوچک دعاست. این پنج انگشت اثر انگشتان دست چپ کلیسای پنهان در کتاب اعمال رسولانه. در قرنتیان باب دوازده پولس پولوس اثر انگشتان دیگه ای رو به ما میده تا ذات طبیعت ماهیت و دلیل کلیسا رو درک کنیم. پولس اینطور میگه وقتی شما کلیسایی واقعی دارید که در اون روح القدس کار میکنه و خود کلیسا هم کار میکنه، شما باید انگشت اتحاد رو داشته باشید. این خیلی فوق است. اتحاد فوق طبیعی و یا یگانگی به این دلیل که تمام اعضای گوناگون کلیسا باید در کنترل یک سر باشن. سر این بدن در واقع خود عیسی مسیحه. پس اتحاد انگشت کلیسای الهام گیرنده از روح القدسه انگشت بعدی گوناگونیه، میشه متحد بود بدون اینکه گوناگونی و تنوع و قربانی کرد. خیلی از سازمان ها هستن که به شما میگن شما میتونید یکی از ما بشید ولی نمیتونید متفاوت باشید. شما باید متفاوت بودن خودتون رو فدا کنید و خودتون رو در قالب شرکت ما قرار بدید تا با ما متحد بشید. بر اساس کتاب مقدس این اتحاد نیست. این یک نواختیه. با این حال اتحاد در بدن مسیح و طریقی که کار میکنه متحد بودن مثل پنج انگشت دست هست و گوناگون بودن مثل تفاوت بین انگشتان هست انگشت میانی تنوع مشاهده میشه که این تنوع در کلیسا وجود داره وقتی روح القدس در بدن ایمانداران شروع به کار میکنه او فقط از شبان یا یکی دو نفر از کسایی که اتایا دارن مثل کسانی که سرود میخونن یا رهبره پرستشیه کلیسا هستند استفاده نمیکنه این روش کار روح القدس نیست وقتی روح القدس در یک بدن کار میکنه او به همه اعضای اون بدن ته میده مسیحی بدون عتیه نداریم یا ایمانداری که بخشی از بدن مسیح باشه و نتونه چیزی از عطایای روح القدس رو دریافت کنه پس تنوع در کلیسا وجود داره تمام اعضای این بدن بر اساس روح القدس کار میکنن و وقتی روح القدس سرچشمه این یگانگی و معصد شدگی باشه، تمام اعضای این بدن براساس اساس روح القدس کار میکنه یک دلی یادتون باشه که انگشت اشاره ی کلیسا برای عشق برای خداونده. این میتونه به ما کمک کنه تا یادمون باشه که به همدیگه عشق بورزیم حالا چطوری به همدیگه محبت کنیم؟ این چیزیه که اونها در مورد کلیسای اولیه میگن آمون که پولوس از تصویر بدن برای توضیح این نکته استفاده میکنه او همینطور میگه اگر یک عضو دردمند گردد همه اعضا با او هم درد باشند و اگر یک عضو سرف راز شود همه در خوشی او شریک گردند سالها پیش وقتی داشتم فوتبال بازی میکردم یکی از انگشتانم شکست انگشت بزرگ من به شدت برگشته بود و قسمت مفصلش شکسته بود این بدترین دردی بود که تا به حال کشیده بودم وقتی منو از زمین فوتبال بیرون آوردن و به بیمارستان بردند روده به شدت درد گرفته بودند انگار بزرگترین مشکل من درد شدید روده هام بود. من به روده هام می گفتم، شما که به جایی برخورد نکردی مشکل اصلی من انگشت بزرگمه. نمیفهمید فهمید که این انگشت منه من نباید مشکل شما را داشته باشم. با این حال دکترها به من توضیح دادند که این درد ناشی از همدردی کردن سیستم عصبیه یعنی بقیه بخش‌های بدن تو به این دلیل که انگشت بزرگ درد میکنه دارن باهاش همدردی میکنن حالا در تصویری که پولوس از بدن میده این همدلی که در این تصویر زیبا وجود داره باید بین اعضای مختلف بدن باشه اگه عضوی از این بدن زخمی شد کل بدن زخمی میشه به این دلیل کل اعضای بدن با عضوی که آسیب دیده همدل میشه این یکی از مشخصاتشه این اثر انگشت نشان همدلیه که در کلیسای پر از روح کار میکنه انگشت کوچک دست راست برابریه تمام اعضای این بدن با سایر اعضا ارزش مساوی دارند همه اعضا ماهیتی مثل هم ندارن، بعضی از ماهیت ها ارزش بیشتری دارند اما از دید خدا همه مساوی‌اند و برابری خیلی مهمه پولوس از این تصویر استفاده میکنه که خیلی شبیه به استخوان گوش میانیه شما حتی از اون باخبر نیستید شاید شما اصلا در موردش فکر نکنید ولی اگه این استخوان رو بردارید مثل یک ماهی که توی خشکی افتاده بالبال بال می زنید. به این خاطر که کنترل تعادل شما دست این استخوان هست. بعضی از ماهیت های بدن شما تعادل شما رو حفظ میکنه ولی شما حتی بهش، فکر هم نمیکنید پولس به ما میگه بعضی وقتا این اعضایی که در بدن ما دیده نمیشن خیلی ناچیز به نظر میرسند با این حال تمام اعضای یک بدن مهم هستند پس انگشتانی که گفتیم اینها بودن اتحاد تنوع چندگانگی همدلی و برابری به طور خلاصه اگه شما کلیسای پر از روحی دارید شما کلیسایی با این اثر انگشتان خواهید داشت که نشان دهنده واقعیت روح القدس پنهان شده در قلب ماهیت و طبیعت کلیسای شماست. گوناگونی و اتحاد آیا کلیسای شما اینطوری هست؟ این کلیسا باید رشد و بلوغ روحانی رو به همراه داشته باشد. در اول قرنتیان باب 14 هم، اگه به دقت و با بسیرت خونده باشیم میفهمیم که او با مشکلاتی که در این نامه بهش پرداخته، مقابله کرده. پولس با مشکلاتی مقابله کرده که خیلی شبیه مشکلاتیه که امروز ما در کلیسای خودمون داریم. کلیسای قرنتیان کلیسای کاریزماتیک پولسه، عطایای روح القدس در کلیسای قرنتیان بدیهیه. نشانه عطایا عطایایی که بیشتر مشهود هستند مثل اطیه زبانها، نبوت و شفا، ماهیت خیلی آشکاری در کلیسای قرنتیان دارند. شما میتونید با مطالعه کردن دوباره بابهای دوازده، سیزده و 14 این مسئله رو درک کنید و تلاش کنید مشکلاتی رو که پولس در موردش راهنمایی داده مشخص کنید. پولس راهنمایی هایی رو داده که امروز خیلی به درد شبانهایی میخوره که باید با مشکلات مشابه در کلیساشون روبرو بشن. وقتی افراد وجود روح القدس رو از طریق صحبت به زبان های غیر ثابت می و فکر می برتر از کسانی هستند که این عطیه رو ندارند اونها فکر میکنند که صحبت به زبانهای غیر گواهی این رو میده که اونها عطیه دارند اونها میگن اگه شما توانایی صحبت کردن به زبانها رو ندارید از روح القدس پر نیستید و یک فرد روحانی نیستید حالا وقتی به عطیه زبان غیر در باب چهاردهم نگاه میکنیم این سوال برامون پیش میاد آیا تجربه صحبت کردن به زبان های غیر تجربه بعضی از مسیحیانه یا تمام مسیحیان باید این تجربه را داشته باشند افرادی در قرنتس بودند که میگفتند برادر صحبت به زبانها متعلق به تمام مسیحیانه اگر شما این تجربه را ندارید شما تجربه مسیحی بودن را ندارید این یک استدلال غلطه این یک کفر و پولس با این مشکل در سه باب سیزده و 14 مقابله میکنه این مشکلات قطعی که در قرنتس وجود داره امروزه هم در زمان گرفتن عطایای روحانی وجود داره. اول از همه او شروع به راهنمایی در مورد تبعیض قائل شدن میکنه. پولس با فردی مقابله میکنه که عطیه رو دریافت کرده و برای دیگران که این عطیه رو دریافت نکردن تبعیض قائل میشه. پولس با مشکل تبعیض مقابله میکنه به این دلیل که مشکل تبعیض در کلیسا مشکل ناچیز شمردن دیگران رو به دنبال میاره. فردی که مکاشفه بخصوصی از روح القدس نداشته باشه ممکنه زندگی روحانیش به خطر بیفته. زندگی افراد به طور کلی در خطره و بخصوص خصوص هستند هستن که زندگی روحانیشون به خاطر این تبعیضات به خطر می‌افته. پس اگر شما به کسی بگید من فکر میکنم که تو هنوز روحانی نیستی، امکان داره اونها بترسن و چیزی رو که روح القدس میخواد به اونها بده یا در اونها کار کنه کم حالا این تبعیض قائل شدن کم ارزشی رو به همراه میاره. کم ارزش شمردن دیگران تفرقه به همراه داره. بدیهی که تفرقه باعث میشه که افراد از کلیسا بیرون برن. چون افرادی که تبعیض کم ارزشی، ناچیز شمردن دیگران و تفرقه رو تجربه کردن، در اون بدن یا کلیسا برای مدت طولانی نخواهند ماند. چون به عنوان اعضای درجه دوم روحانی با اونها رفتار می‌شود. پس اونها به کلیسای ای میرن تا به عنوان اعضای درجه اول با اونها برخورد بشه پولوس در این بابها با این جور مشکلات مقابله میکنه براساس اساس پولس، پولوس بی اطلاعی در مورد ماهیت روح القدس یک اشتباهه و اما در خصوص تجلیات روح ای برادران نمیخواهم غافل باشید بعضی از افراد هستند که اشتباه فکر میکنند شما نباید از چیزی که کتاب مقدس در مورد روح القدس و چگونگی ماهیت روح القدس میگه قافل باشید دومین موقعیت در رابطه با موضوع روح القدس موضوع رد کردن ماهیت روح القدس من افرادی رو میشناسم که میدونن کتاب مقدس دقیقا در مورد ماهیت روح القدس چی میگه ولی اونها حتی به جزئی از اون هم تمایل ندارن اونها این رو مععزه نمی کنن اون رو تعلیم نمی دن، و جپه خاصی در مورد این موضوع نمیگیرند. اونها هیچ وقت این رو عنوان نمی کنن چون خیلی تفرقه اندازه و هیچ مشکلی رو نمیخوان، پس اونها موضوع روح القدس رو رد می کنند طوری که انگار این سباب در کتاب مقدس وجود نداره. من خادمی رو می که به من میگفت دوست داره ورقهای این سباب را از کتاب مقدسش پاره کنه به این دلیل که این سباب باعث میشه خیلی از افراد از کلیسا جدا بشن. حالا وقتی شما بخواین این صفحات رو از کتاب مقدستون پاره کنید به سختی میفتید. نباید صفحات این سباب رو از کتاب مقدستون در بیارید اگه میخواهید ماهیت روح القدس رو درک کنید و جزو افرادی باشید که با ماهیت روح القدس کار میکنن باید این صفحه رو به خاطر بسپارید تفسیر کنید خلاصه کنید و جمبندی خودتون رو به خاطر بسپارید شما باید در این سباب مهارت کسب کنید چون نمیتونید اینجوری بفهمید که پولس در مورد ماهیت روح القدس چی میگه؟ رد کردن ماهیت روح القدس کار اشتباهیه. وقتی پولس میگه شوکگزاری فقط برای بعضی از ثمرات روح اشتباهه، او جپگیری اشتباه دیگه ای رو در مقابل ماهیت روح القدس اعلام میکنه. شوکگزار بعضی از ثمرات روح در مقایسه با دیگر ثمرات روح نباشید. این چیزیه که قرنتیان انجام میدادند، مخصوصاً در جایی که زبان‌ها صحبت میشه. بعضی ها فقط برای دریافت یک سری از عطایا شک گذار بودند. این یک عطیه بدیهیه صحبت به زبانها خیلی محسوسه که پدیده ای ماوره و طبیعی هست بعضی از مسیحیان قرنتوس فقط برای عطیه صحبت به زبانها شک گذار بودند و برای بقیه عطایا تلاشی نمی کردن. ببینید اغلب مواقع پولس در مورد عطایایی که در روح می‌گیریم صحبت میکنه. او و اینطور میگه. بر طبق خواسته او بر حسب خوشنودی او نه بر طبق خواسته و خوشنودی شما یا من. میل و علاقه ما به داشتن یک کادو باعث نمیشه که اون کادو بهترین باشه. ما نباید به روح القدس بگیم این چیزیه که من میخوام. وقتی کسی عطیه ای از عطایای روح القدس رو میگیره این عطیه یک سورپرایز برای دریافت کننده است. شما نباید از او خواهش کنید که فلان عطیه رو به من بده. ایسا گفت ای گله یکوچک، ترسان مباشید زیرا خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. اگه خدا میخواد که یک عطیه را به شما بده، شما اون هدیه رو میگیرید، اون در شما قرار میگیره و اندیشه اون عطیه هست که باید بهش توجه نشون بدید. این هدیه از قلب کسی که اون رو به شما عطا کرده از قلب روح القدس میاد و این باید شما رو خوشحال بکنه. منظور من اینه وقتی میگم نباید اطایه رو ناچیز بشماریم. در این قسمت پولس به قرنتیان و به ما میگه نباید از عطایای روح القدس تقلید کنیم و وانمود کنیم که اونها رو داریم. من فکر میکنم این خیلی تأثراوره. ولی بعضی وقتها گروه افراطی هستند هستن که مردم رو تحت فشار قرار میدن و میگن تا زمانی که این عطایا رو نداشته باشید اجازه ورود به گروه ما رو ندارید. این امر باعث میشه تا مردم تظاهر به داشتن عطایا کنن اونها عنوان می کنند که بعضی از سمرات روح رو دارن تا فقط در این گروه ها پذیرفته بشن چون اونها میدونن تا زمانی که عطیه روح رو نداشته باشن به اونها اجازه نمیدن که وارد گروهشون بشن این خیلی غمنگیزه شما نباید تظاهر به داشتن این سمرات بکنید این یک جبهگیری گیری دیگر در مورد ماهیت روح القدسه. وقتی پولس باب دوازدهم رو تموم میکنه، او یک باب عظیم در مورد محبت به ما میده. در باب سیزده او از محبت با ما حرف میزنه. محبتی که در باب دوازدهم در موردش میگه و اینک من عالی طریق را به شما نشان میدهم. این چیزی که از عطایای روحانی هم بهتره. در باب چهاردهم پولس به ما در مورد ماهیت عطایای روحانی در بدن مسیح میگه. در باب دوازدهم پولس در مورد عطایای روح به ما میگه که سند حقیقت روح وقتی درون ما قرار میگیره و ما رو مس میکنه. سندی که باعث میشه بفهمیم روح القدس در ما قرار داره یا نه چیه؟ جواب اینه. عطایای روحانی. در باب 13 هم پولوس در مورد نشانهای صحبت میکنه که با اون میفهمیم که روح القدس ما رو پر کرده و درون ما قرار داره. اون نشانه محبته. در باب چهاردهم که یک باب بزرگ دیگر هست، پولس رسول با ما از نظمی صحبت میکنه که وقتی روح القدس درون ما قرار می گیره، باید اون نظم در ما وجود داشته باشه. نشانه ای که با اون متوجه میشیم شخص یا گروهی از مسیحیان مسح روح القدس رو دارن چیه؟ و نیز این چه روحیه که در اونها کار میکنه؟ این نشانه همون نظمیه که درون اونها قرار گرفته. این نظم در باب چهاردهم توصیف شده در مورد نظم کلیسایی در کتاب مقدس خیلی کم نوشته شده اگه سه چهار ماه به کلیسای دیگهی برید متوجه تفاوت پرستش اونها میشید و امکان داره کمی گیج بشید شاید به کتاب مقدس مراجعه کنید و بپرسید کدام درست میگن منظورم اینه که اینها درست رفتار میکنند و یا اونها کدومشون درست پرستش میکنند شاید شما از اینکه بفهمید در کتاب مقدس خیلی کم به این مسئله پرداخته شده تعجب کنید. تنها چیزی که ایسا در مورد نظم کلیسا در پرستش میگه زمانیه که داره شام آخر رو با شاگردانش میخوره. این تنها چیزیه که عیسی در مورد پرستش میگه. اول قرنتیان باب چهاردهم یکی از مهمترین بابها در کتاب مقدسه. وقتی که دنبال جواب این پرسش میگردید نظمی که باید در ما به عنوان ایماندار قرار بگیره چیه؟ در این با پولس میگه پس چه گوییم ای برادران؟ هنگامی که گرده هم میایید هر کس سرودی، تعلیمی، مکاشفهی، زبانی و یا ترجمهی دارد اینها همه باید برای بنای کلیسا بکار روند کاملا مشخصه که پولس با مشکل صحبت به زبانها مقابله میکنه او صحبت به زبانها رو شانزده بار عنوان میکنه پولس نمیگه زبانها فقط برای امروزه. پولس میگه که خودش بیشتر از هر کسی در کلیسای قرنتیان به زبان ها صحبت کرده و این خیلی خوبه که آدم به زبان ها صحبت کنه. پولس میگه صحبت به زبان ها یک تجربه مسیحیه ولی به این معنی نیست که صحبت به زبان ها نشانه مسیحی بودنه. مطمئنا پولس صحبت به زبان ها رو معن نمیکنه. در پایان این فصل پولس میگه اما همه چیز باید به شایستگی و با نظم و ترتیب انجام شود. بعضی از مردم میگن اینو شنیدی با نظم و بعضی میگن اما میگه بگذارید انجام شود. کتاب مقدس میگه اما همه چیز باید به شایستگی و با نظم و ترتیب انجام شود. حالا گرچه پولس به راهنمایی در مسئله صحبت به زبان زبانها میپردازه وقتی که صحبت از نظم در کلیسا میشه به اون موضوع بیشتر اهمیت میده. او صحبت به زبانها رو من نمیکنه، اما اهمیت اون رو کمتر میدونه. او یک سری قوانین بنیادی برای بکارگیری عطایای زبانها در جماعت ایمانداران پایریزی میکنه. اگرچه او با مشکلی که در کلیسا در مورد صحبت به زبانها بود مقابله میکنه، این رو فراموش نکنید که یک عضو در بدن مسیح باید بر روی دیگر اعضای این بدن قرار بگیره و تمام چیزها درون این بدن باید تقدیس بشه این موضوع چهل بار در اول قرنتیان باب 14 عنوان میشه وقتی که شما نظمی رو که باید در ما قرار بگیره به صورت خیلی نزدیک مطالعه کنید متوجه میشید که شما باید در همدیگه تقدیس بشید وقتی ما به عنوان بدن انسان هایی که روح القدس در اونها قرار داره دور هم جمع میشیم چیزی که دوباره و دوباره تاکید میکنم اینه که شما باید با همدیگه تقدیس بشید به همین دلیل که پولس میگه بدون تفسیر نباید در جم به زبانها صحبت کرد شما خودتون فقط مس شده اید اما در مورد برادرتون چی تمام چیزها باید در مس شدگی انجام بشه شما باید باعث بشید تا برادرتون هم مس بشه پس باید تفسیری هم در میان باشه یعنی باید کسی باشه که صحبت به زبان ها رو معنی کنه پس باید ترجمه ای هم در میان باشه در خیلی از جاها پولس به این اصل تاکید میکنه به همین دلیل که پولس میگه بدون ترجمه نباید در جمع به زبانها صحبت کرد شما خودتون فقط معص شده اید اما در مورد برادرتون چی تمام چیزها باید در معص شدگی انجام بشه شما باید باعث بشید تا برادرتون هم معص بشه پس باید ترجمه ای هم در میان باشه. در خیلی از جاها پولوس به این اصل تاکید میکنه. همه چیز باید با م شدگی انجام شود. ما باب سیزده رو به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد اما وقتی به پایان باب چهدهم می رسیم، بررسی این باب بسیار عمیق رو تموم می کنیم. شما باید جبهه مناسبی رو در مسئله صحبت به زبانها داشته باشید. بعضی ها میگن خیلی راحت که در این زمینه به ثبات برسیم تا اینکه، در تنشهای کتاب مقدسی باقی بمانیم. کسانی که به زبانها صحبت می کنند، یک تجربه مسیحی بودن رو تجربه می کنند و اگر شما این تجربه را نداشته باشید، از دید اونها آدم روحانی به حساب نمی آید. و از طرفی کسانی هم هستند که میگن صحبت به زبانها برای امروز نیست. در واقع، صحبت به زبانها یک چیز شیطانیه و اگر شما به زبانها صحبت کنید، ما شما را از کلیسای خودمون کنار میذاریم افرادی مثل اینها هستند که نمیخوان وارد این مسائل بشن و میخوان یک موقعیت ثبت شده را در کلیسا به وجود بیارن من میخوام شما رو به چالش بکشم تا به این بابهایی که گفتیم برید اونها رو جمبندی و خلاصه کنید و این سوال رو بپرسید پولس چی گفته منظور پولس از این حرفها چیه معنی این ها برای ما چیه اگه شما این بررسی رو انجام بدید متوجه خواهید شد که پولس استفاده از عطایای روحانی رو معن نکرده. از جمله عطیه صحبت به زبانها، پولس هیچ وقت افراد را از صحبت به زبانها معن نکرده. پولس میگه اما همه چیز باید به شایستگی و با نظم و ترتیب انجام شود. شاید شما که این درس رو شنیدید، چیز خاصی از اون دستگیرتون نشده باشه. یادمه که در جلسه قبلی گفتم فقط کسانی که روحانی هستن، و تولد دوباره دارن میتوانند چیزهای روحانی رو درک کنند. اگر شما درک نکردید، از شما دعوت میکنم تا از خدا بخواهید تا نجاتتون بده. مسیح رو که به خاطر گناهان شما مرده قبول کنید و به قیام او از مردگان ایمان داشته باشید و بدانید او همانی هست که گفته. او نجات دهنده و خدای ما هست. دوستان ممنونم از اینکه یک جلسه دیگه هم با ما بودید. شما را تشویق می کنم تا دیگران رو هم به این جلسات دعوت کنید و با همدیگه مطالعه خودمون رو در اول قرنتیان ادامه بدیم. خواهش می که این قسمت رو به دقت بخونید و به دشمنمون شیطان اجازه ندید که در بدن مسیح تفرقه ایجاد کنه. از خدا میخوام تا روح متحد بودن رو به شما و کلیساتون عطا کنه و آرامش و قلب شما رو فرا بگیره. فیض خداوند بر شما و بر خانواده‌تون روزافزون باد